بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والي والصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله الماثبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول الله فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان و ارکانه ستت ان تؤمن بالله و ملائتته و واليوم و الاخر والقدر خيره و شره آخرین جلسه که ما داشتیم بحث ایمانو کردیم بحث همین حدیثی که از رسول صلی اللہ علیه وسلم ورده در تعریف ایمان که رسول صلی اللہ علیه وسلم می فرماین ایمان افتاد و اندی شعب داره بلاتا اینش لا اله الا اللہ از قول و زبان پاینترینش خارقاشت از راه جمع کردنه که عمل جبارهه و پایینترینش و بعدم بعد از پاینترین رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمند و فرمن و, و من الیمان حیاء که عمل قلبه پس ایمان شامل اعمال بدنی هست قول و اعتقاد قلب و عمل قلب الان میخواد حیا باشه میخواد ترس از خدا باشه و توضیح دادیم بحث حیا رو توضیح دادیم بحث ارکان ایمان اون چیزهایی تو اومده در شهر و همیت بهش داده شهر توضیح دادیم دیگه نیاز به توضیحش نیست اون چیزی که الان مهمه در بحث ایمان چون ایمان در لغت یک معنا داره در اسطلاح یک تعریف دیگر داره ایمان در لغت از اطمینان، از تصدیق همراه با اطمینان. ما هرچند که اینجا نباید بدیم خصوصا قضیه قضیه لغوی ایمان چون از مباحث حساس و مباحث که اه خیلی اهل کلام فیرامونش صحبت کردن و اومدن برای خودشون یک تعریفاتی اووردن که بعد خیلی از اینمه دیگه اومدن جوابشون رو دادن که ایمان در لغت متوادف با تصدیق نیست ایمان بلکه فراتر از تصدیقه و اومدن برای اون مثال اووردن از کتابهی لغوی مثلا گفتن که ایمان در لغت به یه چیز قایم اطلاق میشه تصدیق یه چیز قایم ولی تصدیق به یه چیز محسوس مثلا میگن ایمان آوردیم به ملائکه که ندیدیم ولی تصدیق به ابری که در آسمان نمیگیم که ایمان داریم باور داریم به ابری که در آسمانه ایمان زدش کفر و تصدیق زدش تکذیب ایمان خودش متعدی نمیشه بلکه با حرف دیگر امن تو به ولی تصدیق خودش هست تو این فروق لغوی هست بعد می دلیل آوردن از از ل... از قران بر اینکه ایمان همون تصدیق یعنی که میخوان بگن ایمان همون عرفان تنها تصدیق تنها فقط ایمان برمیگرده به قلب در لغت پسون در لغت اینطوریه پس در شعر هم این همینطوری باشه اومدن دلیل آوردن فرموده خود اصطلاح کرد فرمودید خداوند ما, ما انت بمؤمن لنا فرموده برادران یوسف به پدرشون یعقوب وقتی که یوسف رو بردند یوسف وقتی که... که گفتن که گربو رو خورده. بعد صدرشون گفتن تو به ما ایمان نداری ما انت به مؤمن لنا اونا گفتن اینجا ایمان به معنای تصدیق اومده ما در جوابشون میگیم اینجا تحسیق همراه با امر غیبی اقرار بر امر غیبی چون مسئله بوت یعقوب ندیده بود به همین خداوند از چه کلمه ای برد از کلمه تس... از کلمه ایمان ما, ما انت به مؤمن پس اینجا فراتر از تصدیق تنهاست اون باوری که اساسش حس اساسش دیدنه چون یعقوب ندیده بود حتی که به فرد اگر ما بگیم ایمان در لغت به معنای تصدیق دلیل بر این نمیشه که در شرع هم همون همون معنا داشته باشه مثل نماز نماز در لغت معنای دعاست ولی در شرع به معنای اون عبادتی که در پنج بعد خاص با ارکان خاص آدابی خاص خونده میشه دلیل بر این نیست که در چون در لغت به این بی معنا در شرع هم به همین معنا باشه مؤلف اینجا بعد از اینکه این حدیث رو آورد که ایمان اعمال جوارح و قول به زبان و اعمال قلب رو شامل میشه، اومد پرداخت به اون چیزی که به قلب برمی‌گرده. یکی از های ایمان آن اعتقادات قلبی. بعد اومد گفت که و ارکان او سته یعنی ایمان ارکان شش تاست. اون ارکانی که از لحاظ قلبی با نسبت به اون داشته باشیم، یعنی اون تصدیقی که قلبم نسبت به اون داشته باشه. اولین تصدیقی که باید داشته باشیم نسبت به بون بون ایمانی که ما به خدا داریم اول ایمان به خداونده یعنی ما باید ایمان داشته باشیم به خداوند این ایمان به خداوند ایمان به اون افعال خودشه یک قسمتش که برمیگرده به توشید علمی یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش یعنی که ما اعتقاد داشته باشیم که خداوند صاحب اسم و صفات صاحب ربوبیت خالق مصور مدبر و ما باید به با اینها ایمان داشته باشیم، با درکف داشته باشیم. توحید علمی یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش این قسمت اول ایمان به الله قسمت دوم لازمه این یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش توشید عملی هست لازمه اش توشید عملیه. یعنی ما اینکه اقرار کردیم به عبودیت، به بندگی، ما اینکه اقرار کردیم به اینکه خداوند خالق آفریننده هست لازمه اش عبودیت و بندگیه. یک تا قرار دادن خداوند در افعال ما خودمون یعنی فعل ما خودمون را خاص خدا قرار بدی اون فعلی که برای خدا انجام میشه از نماز از روز خاص خداواد انجام بشه این توحید عملی بهش میگن توشید علمی و توشید عملی یک تا قرار دادن خداوند در افعالش یک تا قرار دادن خداوند در افعال بنده اونجوری افعال خود خداست اینجا افعال بنده هست که بهش میگن توشید الوهیات بهش میگن توحید عملی بهش میگن توحید عبادات الوهات و الوهیت از اینها یاد میشه از توحید عملی این قسمت دومش قسمت اولش گفتی میشه روبیت و اسم و صفات یا توحید المعرفت و الاتباط و قسمت توحید عملی گفتی میشه توحید القصد و طلب بسیدر ما یعنی هیچ اختلافی نداریم در اینکه حالا هر کسی یک نامی بذاره مهم معناس مهم معناس که مقصد ما از اون چی باشه مقصد ما از توحید علمی و مقصد ما از توحید عملی و پیامبران خداوند برای همین فرستاده شدند خصوصا توحید عملی چون وقتی که توحید عملی فرستاده شده بشه دیگه خود به خود توحید علم هم در بر می گیره و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سی توحید عملی اعبدوا الله برای عبادات فرستاده شدند پس این مسئله خیلی مهمی هست که پیامبران خداوند برای این فرستاده شدند خب چرا نه فرستاده شدند برای اینکه خدا را معرفی بکنن چون مسئله وجود خداوند مسئله اینکه خداوند خالق و رزاق یک امر بدیهی بود برای مشریکین. کسانی در زمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو جهل و امثالش و و دیگران از سران قریش می‌دانستند که خداوند خالق و اقرار داشتن كل ما في السماوات والارض. لا يقولون لله. اینها این اقرار داشتند به اینکه خداوند خالق و رازقه به توحید عملی بخاطر به توحید علمی ایمان داشتن، اقرار داشتن به خاطر همین علیهم الصلاه والسلام فرستاده تا اینکه توحید علمی را اص... عملی را اصلاح بکنن یعنی اعمال بندگان را اصلاح بکنن نسبت به اون فرردهگی که ما بهش اعتقاد داریم یک مسئله ای که مهم هست در بحث ارکان ایمان که ما باید بهش توجه خاصی داشته باشیم ایمان به الله اینه که این ایمان به الله این نیست که ما فقط بگیم تصدیق کردیم باور کردیم که خدای هست کلمه توحید کلمه لا اله الا الله و اقرار به خداوند اینکه خدامان فقط مصحق عبوریت پرستشه و اینکه خدامان فقط خالق آفرینشه این کفایت نمیکنه. اول ما هفتو شرط میکنند در قرآن اومده برای این کلمه ذکر کرده. شرط اولی علم. یعنی اینکه مثلا من بگم ایمان دارم به الله کافی نیست بلکه باید علم به این کلمه داشته باشه. مثلا بلفرز آمده میگم این متن رو میکنیم علم به این کلمه رو داریم میکنیم. علم به کلمه توافقی کلمه لا الله فعلم أنه لا إله إلا الله إن أمر خدمند برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شرف الكلام هذا. خدمند بقتل إن شرافي الكلام روبراسون بالبزوك ترينشة. شريف ترينشة. سكناز لخودشات. ونعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقوله كعلم داشت بعش الناس كلمة كلمة توحيد. فعلم أنه لا إله إلا الله. بس مسألة خير مهمة هذا. علم بكلمات توحيد. يعني إنسان برد دنبال إنك, إنك إن توحيد. إلا إله الله. كمعناه دره. أي معناه شئ إنك لا خالق إلا الله. لا حاكم إلا الله ايدرس هي لا موجوده الا الله كل شيء دار وجود ليس جزء الله يعني كل شيء خداس ووحدة الوجود خير اشو يا وان متكلمين قلت الله صانع الا الله لا خالق الا الله اي وقال ان بتوحي او توحي كيف بيامبرoverlineفرد شدهن ان بود كي فقط ما اقرار داشته باشين بگين خداوند خالق و به که خداوند آفریننده و خالق است مشهدی قبول داشت. پس با علم داشته باشید نسبت به این کلمه، اینکه خداوند این کلمه رو در قرآن چگونه معرفی کرده، دو تا قسمت هست. لا الهه نافیه و اثبات الا الله ناف و اثبات. یک هر مره می و مصداقش در فرموده خداوند هست که می‌فرماید: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان الله. این اثبات رو مقدم کرد. ان اعبدوا الله الا الله ان الله و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتركوا الطاغوت نفيا لا اله يعني كل شيء دیگه غیر از خدا ممن پرستی نشه تعظیم نشه و این در قرآن زیاده نه اینکه تنها یعنی فقط بحث این داشته باشیم که با توجه به این آیه مثلا ما بگیم که یک آیه بگیم که خدامن معبود معبود این نیست دو خدا باشه فقط اینو تفسیر بکنیم نه بلكي بعد نصوص ركن اور احمدیگی بزنیم ببینیم نو باو کنیم که آیات قرانه دیگه چی در این قضیه در معبود بودن خدا بعد فقط مصحف عبودیته جای دیگه خدا نمیفرماید ذلك بأن الله هو الحق و ما یجعون من دونه هو الباصل ذلك بأن الله هو الحق یعنی خداوند فقط معبود به حق لا اله یعنی لا معبود به حق الله ان علمتن لا توحدوا ان علوا واسکو جودی سعودی با توجه به نصوص قرآن چون ما اینلا ایلهالله رضو اللله فرقت ایلهالله ابو جه قبول لاش از آیات زیاد بود حتی آیینی که خداوند رزخروزی داشتندم قبول کرد کل منی رزوق کنم من از سما و لار آخرش خدا میگه فریخون الله. پس این معنا رو نه اینکه کلماتی رو حید دلایل برقالک بودن خدا نمیده. داره ولی که فراتر از این قسمت کوچکیه این قسمت کوچکی که این قسمت از اینکه خداوند خالقی جز خدا نیست همه چون اقرار بهش دارن قبولش دارن دیگه شر نیومده پیروانش بها بده و بخواد توضیح توضیح بده و بگه که مثلا به فرض مخصوص اینه و مخصوص اونه بلکه اومد خطاب کرد به این که دعوت پیامبران ما طور دیگه بود دعوت پیامبران ما به سوی عبودیت و بندگی خداوند بوده دومین شرط از کلمه تشی یقینه که منافات که منافی شق یعنی در ضد شق واقع میشه یقین در ضد شق خداوند در قرآن وقتی که یاد میکنه از منافقین میقیت انم المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم منافقین که شک شدن ایمان حقیقی کسی که ایمان به الله و رسولش داشت و دارد و دچار شک نشده بعد از اینکه ایمان آورده یعنی یقین داشته ولی خب یقین به تنهایی به درد نمیخوره یعنی شخص مثلا ایمان داشته باشه به کلمه توحید با داشته باشه ولی که جرود بکنه استکبار بکنه تحسیق نکنه یا اخلاص نداشت باشه بیاد روی کاری میکنه دیگه اونجا این علمش این یقینش به نمیخوره خداوند مثال فرعون رو میزنه وجحد بها واستيقناتها انفسهم وجحد کرد و یقین داشت ابلیس هم یقین داشت ابلیس که نگفت خدا خدا ابلیس گفت من سجده بکنم به اون چیزی که از گله آفریدی بهونه للملائکه تسول الاله فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کانا من الکافرین ابا که استکبار کرد حاضر نشد هم به زلد در, در بده بخواد زلیل بشه در مقابل خداوند به سر به اطاعت در بیاره نه اینکه خدا را قبول نداشت در قرآن پر از آیاتی که ابلیس اقرار داره به اینکه خداوند خالقه قال ربی بیم اغویت ربی اقرار داره به ربش به پروردگارش به خالقش به آفرینندهش به خدایش ایمان داره قال ربی لیکن مشکل در چه توحید داشت؟ توحید علمی داشت؟ یک توحید عملی سر به اطاعت در نیورد سر به بندگی در نیورد بخاطر همین خداوند گفت استقبار ورزید استقبار از سجده کردن استقبار از اطاعت بس اینکه من علم داشته باشم من یقین داشته باشم کافی نیست بلکه همراه این یقین باید پایبندی باشه انقیاد باشه باید من پایبند باشم باید اون کلام شارع را باید بپذیرم قبول داشته باشم داشته باشم. الا اینها تک تک این مسائلی که من دارم میگم در شر دلیل هست یعنی کلمه توحید از ما پذیرفته نمیشه به اینکه ما علم داشته باشیم و یقین داشته باشیم بلکه شرط و شروط دیگر هست که ما باید داشته باشیم نسبت به این کلمه از جمله شروط کلمه توحید لا اله الا الله قبولیته پذیرشه یعنی پذیرش حرف خدا و حرف پیغمبرش تصدیقشون بکنیم در مقابل اون حرفشون یعنی مثلا به فرض هر بندی که ما میگیم از این مسائل خیلی از مسلمان ها در انحراف افتادن نسبت به اون مثلا قضی علم را که ما گفتیم مرد پرستان که علم به کلمه توحید نداشتن رفتم مرده به پرستیدم رفتم متوسط شدم به زباط صالحین رو نمیدونم رفتم نمیدونم دست به دامن نمیدونم فلان پیر و پیغمبر رو نمیدونم انحراف ایجاد شد در حقیده شون خاطر چی؟ خاطر عدم علم نسبت به کلمه توحید یا مثلا معتذله و, و دیگر فرقه ها که منان در تعریف توحید کلمه توحید تعریف کلمه لا اله الله گفتن سامعی جز خدا نیست اینها اعترافی جا شده در شد بخاطر عدم استقرار نصوص عدم علم به قرآن و عدم علم به استدلالات فی امران خدا یا مثلا بحث در بحث یقین که گفتیم منافقین چهجوری مشکل شدند منافقینی که که باعث اینکه ایمان آوردن دچار شک شدند مؤمن نبات شک داشته باشه نسبت به خداوندش و نسبت به پیغمبری که فرستاده اما قبولیت کسانی که در شر یاد شده از اونها که قبول کردن و پذیرفتن ولی پایبن نشدن علم داشتن یقین هم داشتن پذیرفتن ولی پایبن نشدن ولی نپذیرفتن نتونستن بپذیرند. علت چم تمه در دنیا حب دنیا و وستگی دنیا این که من جواب مردم را چی بیدم چه بدم مثل تا مثال میتونم بزنیم مثل ابو طالب اموی رسول الله صلی رسول الله صلی الله علیه شفاعتش هم بکنه فقط اون چیزی که عذابش کم در بشه به خاطر قومش نتونست صفتی میدونست که رسول الله رسول خداست پناهش داد پشتیبانیش کرد ولی که کلمه توشید را نگفت ابو جهل مادسوسش کرد تو جنب نشست گفت که ای ابو طالب تو میخوای پشت بدی به دین اوبا اجدادت در صورتی که از رسول الله حمایت ده سال از رسول الله صلی در بعثتش حمایت کرد ولی آخرش با عدم پذیرش و عدم قبول از طرف یا هر خدایان روم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و حقه به یعنی حتی ابو سفیان وقتی که رفت سخن میگفت از رسول الله صلی الله علیه و آله و این حقیقتا گفت این پیامبر ولی که نپذیرفت نپذیرفت اینجا وقتی مهمیه یک شخصی اگر از دعوت اسلام بدونه در بین ما زندگی بکنه بعد بگه من نماز نمی خونم این شخص اون چیزی که معلوم به دین به ضر هست معلوم به ضرور هست که باید بدونه اگر شخص بدونه بگه بگ من نماز نمی من روزه نمیگیرم این دیگه شخص لیاقت نماز خوندن برش نیست که ما بیام رووش نماز بکنیم. لیاقتشو نداره. کسی که بین اس آرای در یک شخصی در صحرای بیابونی جایی دور ای زندگی میکنه که از دین اسلام قط و خبری نیست همونطور که در حدیثحفقییفه داریم که به سلام میگوید که کلمه لا اله الا در اشخاصی میkona در روز قیامت و این مسائل بعد سلام میگه يا حذيفه اشخاصی که میان نه نماز میکنن نه روزی میگه اینا وارد دهش میشه. بعد حذيفه در جواب سلام میگه یا صله تنجيه لا اله الا الله در که نمیدونن نه نماز چیه نه روزه چیه, چیه نه زکات چیه کسانی خواهند بود نمیدونن لا یدرون ما صلاه ولا صيام حذيفه رسول الله کسانی که میاد در اخر نمیدونه نماز چه روزی این نمیدونه ولی اگه کسی بدونه ولی که نپذیره بگه من نمی‌خونم کسانی بودن در طول تاریخ از فرقه‌ها بودن که ادعای اسلام کردند اسلام ناب به خود خودشون ولی که ملتزم به اسلام نبودن بخاطر همین کل علما حکم کوبر دادن مثل فرقه باطنیه در مصر که مسینا میگه به ما میگفتن ملحد ملاحده به ما میگفتن از امثال فارابی و دیگران که گفتن که ما ملزم نیستیم به نماز، ما ملزم نیستیم به روزه، این مال انسان‌های عادی و عامیه. ولی اینکه ما ای که فریخته تالیخته‌ایم، ما اینکه به مراتب عقلی بالا رسیم دیگه ما ملزم نیستیم به این مسائل، نمی‌دونم جزئی، نماز و سجده و اینا دیگه این ما مسائل این مسائل پیش و پا افتاده است. این مسائل اصلا سطحیه، مال نه ما عمق نگری، غرف سموظ جش نگار باشه اینها علما شکی در کفرشون ندارن فرقه باطنیه که دولت فاطمی رو تشکیل دادن در مصر که به اسم علما کافرند حتی شیعه 12 اشری هم شیعه باطنیه اسماعیلیه هفت امامی رو تکفیر میکنه به خاطر اینکه همه چیز بد داره توی قرآن هر آیهی ای هر نسی در قرآن بد داره و شرایع دین نه قبول ندارن نه نمازش نه اینها وارد اسلام نشدن که ما از اسلام خارجشون بکنیم چون لازمه کلمه‌ی توحید لا اله الا الله پذیرش آن چیزی هست که الله در قرآن گفته از نماز از روزه و دیگر مسائلی که به ما گفته اما این شخص بدونه که در قرآن اومده ولی بگه من نمی‌پذیرم مثل سروش مثال دارم بهتون می‌ذارم اشخاصی که مبارشون سره یعنی بقول ما رو دست و فنجه داریم نرم نمی‌کنیم تو جامعه از اصفهون مثلا سروش میاد میگه قرآن می‌خونه که درباره قرآن مثلا به رد بر قرآن کتاب داره به اسم صراطهای مستقیم خدا در قرآن میگه ان هاذا صراط مستقیم فتبعوه و لا تتبعوا السبل راه ها نگرید خدا میگه به یک راه ها پیشی میگه همان راه هدایت سرچ گردد این آیه قرآن میاد کتاب می به اسم صراطهای مستقیم ان هاذا صراطی ها یکی و اونجا اومد سبول جمع ور این اومده رد آیه قرآن نوشته راه های به خدا اون راه های صراطهای مستقیم که سراغ خدا یگانه است انسان حق متعدده همون عقل فلورالیس که هر کسی ازداره در فکرش و هر کسی بر حقه اینهاش نتونستن عقل خودشون رو تابع شر قرار بدن عقل خودشون رو تابع شر قرار بدن نتونستن به خودشون بپذیرنن که قرآن کلام رب العالمین حقه پیش اینها کلام خدا حقه مثل سروش که درباره وره قصه موسا و عیسی و یوسف و دیگه پیغمبران خدا میگه اینها افسانه ان حقیقت نداره واقعی نداره فکر نکنید موسی بوده فکر نکنید یوسفی بوده خب این هم مفرقه و جهله هذا الا ان هو الا اساطير اصاف اصاف الاولین اینها السوره ها یعنی افسانه های اولین بوده افسانه بوده یوسف و موسی و اینها افسانه بوده یعنی حقیقت نداره واقعیت نداره پس این مسئله رو درش دقت بکنید کسانی که بگو حالا ما مسلمونی ولی این اسلامی که در قران اومده ما قبول نداریم اینا, قب... اینا... اینا اصل اسلام رو اسلامو نپذیرفتن اینها دیگه ما نیاز به تکفیرشون نداریم که بگیم اینا کافرن مرتدن نه نیاز نداریم چون اینها ابتدای امر اسلامو نپذیرفتن یعنی کلمه توحیدی که خداوند مقرر کرده بر ما اون چیزی که از ایمون خاصه اونها پله اول با ما نبودن یعنی وارد اسلام نشودن که ما بخوام خاطرشون بکنیم اینها بلکه معادین و دشمنان قرآن کسانی که دشمنیشون با قرآن شریف واضحه اصل فارابی که میگه پیامبران حق ندونستن و حق نگفتن یا انس که میگه دونستن ولی نگفتن ما شکی در گمراهیشون نداری اینکه بر حق نبودن بر اسلام نبودن پیامبران ندونستن یا پیامبران نگفتن این تهمت خیانته این اتهام به پیامبران خداونده چهارمی در شدت کلمه توحید پایبندی انقیاد که زدش ترکه در بحث قبولیت مادر به هر کدوم از عن دارين. دار و این شرط سؤالی که درباره کلمات اوشین میگیم آیی از قرآن داریم در بحث قبولیت هر مدری قدمان داریم اینهم کان و دقیل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائن لا تارک آلها لشاعر مجنون يستكبرون و اینجا دو تا کلمه آورد اول اینم کلمه دقیقاله لهم لا اله الا الله استکبرون استغفرن وردا استکبر در مقومه کلمه توحید لا اله الا الله و میگفتن و يقولون ا ان ل تارکو الهتنا قبول گفتیم زدش ترکه اینها مشین گفتن که ما یعنی به خاطر کلمه توحید عبادت بتامونو ترک بکنیم کلمه توشید را ترک گفتن به خاطر اینکه بتا را ترک نکنه. این مسئله خیلی مهمی هست که انسان در مقابل شهر تسلیم بشه و اون افکار خودش عقل خودش و تابع شهر قرار بده چارمین شهر از کلمه توحید انقیاد که ضدش ترکه بازم باشید قبولیت ضد شکه و انقیاد زدش, زدش ترکه وانیبو الى ربكم و اسلمو له وانیبو انا بد بکنی که بسیو خدا بر و اسلمو تسلیم بشید یا ایها النادین آمنوا ادخلوا فی السلم کافح ولا تتبعوا خطوات الشیطان اینه لكم عدو ممید. فإن زلالتوا من بعد ما اسم البينات فعلم أن الله عزيز حكيم أي كثير من أوردي وردتها مميدين مشي يا أيها الذين آمنوا دخولوا في السلم كافة يعني كاملا تسليم أمر بشي إن القيادة طيباً إنسان بدا مقابلش استقامات بكنا طيباً إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخاف ولا تهزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عرض عليها بالنواجد درسو استقامت میده رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی بدن اون اصلی به دین بچسبید اگر میخواهید دل نشید سه انسان به دین بچسبید این انقیاد انسانی که انسانی که پذیرفت کلمه توحید باید نسبت به شریعت خدا پایبند بشه نماز و روزش و اون احکامی که خداوندا رسونده انسان باید پایبند و محکم را بگیره پنجم شرط صدق که زدش کذب و دروغ احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين يعني خدابن بياد فكرة مردوك رغوشون بکنين دو فتنشون نکنين امتحانشون نکنين خدابن دك با امتحانات صادق رأس خوزم مشخص میکنن فالصد وزد شكز بير انسان صادق از غير صادق خدابن لقض مشخص بکنين ماها هم خدابن امتحان ممي ماهایی که خداوند این علم رو بهمون داد، این اقامت حجت رو برمون کرد. ما که الان قران رو فهمیدیم معناش یه‌ به مرور زمان در مشکلات و مصیبت‌ها افتادیم، آیا دین خدا را رها می‌کنیم یا نه؟ نمازمون رو ترک می‌کنیم یا نه؟ روزه‌مون رو ترک می‌دون، کسی نمی‌دونه، قلوب العباد بین اسبوعین من اصبر الرحمن یقلبها کیف یشاء. هر تری قصه دادش می‌کنه، حسابم برود رو باد به خودش بشه. معلوم نیست، شاید در یک فتنه ای بیفتیم که سلام بشه به سمت بد دین و بد بودن. میان منفعه دینی درس میخونن یک سال دو سال سه سال بعدن پشت به دین میدن میگن که, که نونی تو این دین ما ندیدیم و نیست و بعدن اومدن بر علیه دینم سخن گفتن بر علیه شیوخ و مشایق سخن گفتن همون چیزی که منافقین در زمان رسول الله صلی اللہ علیہ به صحابه و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میگفت شیشومین شرط کلمه توحید اخلاص هست که ضد شرک که شریع قرار ندیم برای خداوند در عبادت و پرستش و اطاعت خالص قرار دادن دین برای خداوند و ما امرو الا الله مخلصین له الدین اخلاص علا لله الدین خالص انسان عبادتش فقط برای خداوند یک تا باش او شرط کلمه توحید محبته محبت و بغض آن چیزی که منافات داره ضد کلمه توحیده حب توحید رو داشته باشه حب خدا و دین خدا را داشته باشه حب تشریعات خدا را داشته باشه نه اینکه بگه من خدا را دوست دارم ولی که دین دوست دارم اگر دینه بگم بر سر آتش. و من الناس من يتخذوا من دون الله اندازن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشهد من الله حب شون خدا شدی. ترین قابل خیاس است با حب مشرکین است به ود هاشو. نه شما چقدر حتی پایبندان مشکین یا مثلا علیان های دیگه مثل بودا و غیر چقدر پایبندن نسبت به دین خودشون، آداب و تقالید خودشون، آبواجدادشون. محبت ما نسبت به دین اسلام نباید قابل قیاس با اونها باشه. سبحان چقدر هزینه میکنن، انفاق میکنن از مال خودشون به خاطر دین خودشون، ولی که ما ها چقدر سستیم شما خود رو در جامعه خودمون. ولی که مؤمنان حقیقی هستن به قدر دینشونو میدونن، ارزش دینشونو میدونن، دینشونو محکم گرفتن، با و سخت گرفتن. و تعبت به ام میدن و میخوان مردم رو نجات بدن این محبت کلمه تو اینه که این کلمه رو نه به خاطر خودشون بلکه به خاطر خداست تا جایی که توانشون میرسه به خاطر اینکه محکومشون ازشون راضی باشه سعی میکنن به خاطر این کلمه علیا باشه تا کلمت الله جهاد میکنن و خونشون رو فدا میکنن این محبت یعنی کلمه توشید فقط این نیست که من بگم صادقم من بگم یقین دارم من بگم علم دارم من بگم اخلاص دارم خیر بود خونه فدای اسلام بکنم همونطور که رسول الله و اصحابش کرده نه اینکه ما دچار شکست روانی بشیم در مقابل اسلام بگیم نه دین اسلام مده از خود استفاق بکنه خیر دین اسلام اومده که خدا را راضی بسازه و اون چیزی که خدا ازش ناراضه از روی کره زمین پاک بکنه این ممسلم حقیقیه این مسلمان حقیقی کلمه توفید میخواد علیا باشه بالاترین کلمه باشه. نه مسیحی پراسیده بشه نه بجای فراسید پرستیده بشه. اون چیزی که خداون بغضش داره بلکه آفرینش آفرینش خداون ملیکی خداون حتی آسممان ها بغضش دارن بیاد با اون معرضه بکنه. مگر خداون در قرآن نمیگه تکاد از سوافی یا سافبان نزدیک که شکاف بر بداره از چی؟ ان دعو للرحمن اون داعی که ادعای فرزندی برای خدا کردن گفتن که فرزندی به خداست این کلمه بهتان به خدا این کلمه زور به خدا ما هیچ وقت راضی نمیشیم این چنین کلمه به خدا نسبت داده بشه ما میخوایم کلمه خدا علیا بشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم زحمت کشی تلاش کرد تا اینکه تونس لات و و دیگر بت‌ها رو نابود بکنه تا اینکه غیر از خدا کسی دیگه پرستیده نشه خونمون رو با فداییم این لازمه محبت رحمت کشیدند تلف کردن در راه رساندن دین صلی الله علی محمد و آل محمد